پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی دایم گل این بستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دیشب گله زلفت با باد همی کردم گفتا غلطی بگذرزین فکرت سودایی صد باد سبا آنجا با سلسله می رکسن. این است حریف پیدل تا باد نپیمایی مشتاقی و محجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی ساقی چمن گل را بیروی, ساقی. چمن چمن چمن گل گل را بیروی تو رنگی نیست شمشاد خرامان کن تا باب بیارایی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی به یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی لطفان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خودرائی مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی حافظ شب هجران شد بوی خوش بس آمد شادیت مبارک باز ای عاشق شیدائی داشت داشت داشت داشت داشت. کنم که بارها و بارها گفتم که حافظ مثل هر شاعر اصیل مثل هر شاعر حقیقی شعرش شعن نزول داره یعنی به یه علت این شعر گفته و این مال شعرهایی مثل بنده است که بیشینن فکر کنند که حالا شعر بگیم نه عشقی باشه نه عاشقی باشه نه عاشقی باشه نه خبری باشه بشیند یه سر, سر کلمات رو سرهم کنم حافظ این طوری نب. و بنده خیال میکنم که این غزل در اوان بازگشت شاه شجاع به شیراز و موقعی که دیگه خبر شکسته برادر شاه محمود قطعی شده بوده و میخواسته بیاد به شیراز حافظ این غزل رو در اشتیاق دیدار شاه شجاع سروده بشه این است که با توجه به این خیلی مسائل حل میشه این پادشه خوبان داد از غم تنهایی شاه شجاع مرد زیبایی بوده و دلش هم میخواسته که زیباییشو ستایش کنن و حافظم همین کرده دل بی تو به جان آمد وقت هست که باز آید. پیداست که نزدیکه دایم گل این بستان شاداب نمی ماند در یاب زیفان را در وقت توانایی آب به نظرم در فرهنگ ما این در حوضه 17 تا معنی براش نوشتم از جمله رنگ رقصساره از جمله آب بسیار نازوع که فلز گرانبه های رو فلزای اندکگاه ها میدن آب طلا آب نه از جمله آب رو و از جمله تروت و تازگی شاداب یعنی با تروت دایم گل این بستان به خصوص کل خیلی معروف بوده به اینکه عممر کوتاه داره و زود از بین میره اینه که میگه دایم گل این بستان شاداب نمیماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی وقتی که میتونی قدرتی در اختیارت از این قدرتت استفاده کن و که همیشه چنین قدرتی وجود نداره دیشب گله زلفت با باد همی کردم گفتا قلط بود ذرستین فکرت سعود آلی مثلا اولش که توضیحی لازم نداره غلطی یعنی اشتباه می کنی و این غلط و غلط کردن که هنوز در افغانستان و تاجیکستان و اینجاها درست معنی صحیحش یعنی اشتباه کردن به کار میره. در ایران هم به همین ترتیب کرده خود حافظ میگه که شیوه یه چشمتری به جنگ داشت ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم یعنی اشتباه کردیم آقای تعریف که اینو خونده فکر کرده که به حافظ خیلی بده غلط کنه خودش میگه چرا کرده ما خطا کردیم و صلح داشتیم. و در سعدی هم آمده <تصفح> توی جدال سعدی با مدهی در گل سون میگه گفتم مزمت اینان یعنی پول دارا. گفتم مزمت اینان روا دار که خداوندان کرم اند گفتا غلط کردی که بنده درم یعنی اشتباکی و هیچ معنی پجراتی و زشتی نداشته او یا از دوره قاجار یا از دوره صفقیه یعنی در عدوار بسیار نزدیک این به صورت پوش در غلط کردی معنی که در نتیجه ناچار بودن برای غلط کردی اصلی یه لغت دیگه بهترشن بعد اشتباه کردی و خطا کردی به حال که اشتباه به معنی شبیه بودن و همانند بودن مثلا به غلط ربط موجود. در هر حال غلطی به چند جای دیگه هم میاد یه جا باز حافظ داره گفتا قلطی خارج در این عهد و است قلطی یعنی اشتباه میکنه میگه گله ظلفش رو با باد سباه میکردم باد سباه گفت اشتباه میکنی از این فکر سودایی در گذرد اخلات یعنی آمیزه های چهارگانه بدن رو که در برابر چهار عنصر هست می گفتن که خون است و بلغم است و صفرا و سوطو. خون صفرا کاملا دانش است. بلغم نوع چیزای چسبندگی است مثل خلط سینه. به اینا که اون میگن بلغم و سودا در حقیقت هیچی نیست. خیال کرده. و بعدم هم اساس طب قدیم بر همین پایه گذشته شده بوده که می که نه این که آلم بیرون از چهار عنصر تشکیل شده آب و آتش و باد و خاک پس لزوماً بعد عالم درونم یعنی درون انسانم از چهار عنصر تشکیل شده بعد نه این که چهار عنصر عالم خارج آب سرد و تر خاک سرد و خشک هوا گرم و آتش، گرم و خشکه بنابراین چهار عنصر سازنده بدنم هم باید همین خاصیت رو داشته باشن مثلا بلغم، سرد و تره سودا، ببخشید، سودانه خون، گرم و سرد و خشک سودا، گرم و خشکه و معتقد بودم که اعتدار مزاج مختص بر تعادل این چهار خلط در بدن و بعد بعضی افراد به دلیل ساختمونشون یکی از این اخلاط در وجودشون قلبه داره دیدید هنوزم عوام و ناس میگن فلان کس بلغن مزاج آدمه که ساغنیا میگن بلغن مزاج یا کسانی که زود خشب بیمینشند او اینا تو به حقیه که و این بوزن سفرای عظیم داشت آدمای های خیالاتی رو می رفتن سودایی که هنوز هم در پرو وقتی میگن فرانکس سوداییست یعنی دیوانست یا در آستانه دیوانه بنابراین فکرات سودایی یعنی فکرات جنونامیست بیت بعدی دنباله بیت قبریست صد باد صبح آنجا با سلسله میگرستن آد صبح خیلی باد است و ناچار میپیشه من خیال میکنم میپیشه لای درختها ها و و امثال اینا و کنایه از سلسله‌ای که آفز میگه همونه میگه در این مقام در مقام اون معشوق تا امسال باز سباب با سلسله می رخصند این از حریفه دل تا باد نپیمایی. باد پیمایی هم یعنی خیال بیهوده کردن و عرفای بیخود زدن و تصورات غلط داشتن بعد دوباره اظهار اشتیاق مشتاقی و محجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکری پایاب رو قبلا عرض کردم اونجایست از دریا کنوز پای آدم رو می و جلوتر دیگه اختیارش از دست میره و اگه شناوری بلد نباشه احتمال قردش هست اون میگن پایاب رو از دست داد اینه که میگه که و محجوری دور از تو چنانم کرد که دیگه پایاب شکیبایی از دست داره میره این پایاب شکیبایی ترکیب قشنگیست و سابقه داره سعدی داره این رو با فراغت چند سازن برگ تنها این نیست. دستگاه گو صبر پایاب به شکیبایی نیست ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشم ترس تنهاییست است ورنه نیست بر گلت بگذار تا در باغ بس زاغبانگی می می‌کنم چون بلبل نیست و هر حال، پایاب شکیبایی است که سابقه داشته لاغلی قرن پیش از حافظ وجود داشته بیت بعدی، بیت ارفانی است و همون است که خداوند همه جا هست و هیچ جا نیست و در کوی قرآن کریم آمده است که فنهنو اقرب و من منحب ورید. ما از رگ گردن به مردم نزید تاریم. ولی خب در این حال دورم هست سعدی تو همون رسه جامعه به علبک معروفش میگه که به اینجا رسیده بودم بعض میکردم برای مردم بیشعور افسرده دلمرده را از عالم صورت به معنی نبرده در معنی این آیت که فنحنا اغرب و الهی من حبل ورید سخن به اینجا رسانه بودم که دوست نزدیک تر از من به من است. وینت مشکل که من از وی دورم چه کنم؟ با کی توان گفت که دوست در کنار من, من محجوم اینو بارها بارها اهل ارفان به صورت‌های مختلف بسیار زیبا بیان کردند. یکیش یه درجه یک سعدیه باز که میفرماد که آستین بر روی و آستین ها گوشات بوده اینکه که می گرفتن تا صورت میده. آستین بر روی نقشی در میان هفکنده خیشتن پنهان و شوری در جهان هفکنده همچنان در قنچه ای واشوب استیلای عشق در نهاد بلبل فریاد خان افکنده ای. هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای. قادری بر زیر دستان هرچه فرمایی رو پنجه زورازما با ناتوان نفکنده این طریقم می کشد کفکنده ای اوصاف هیچ در زبان آم و خاصان را زبان افتند. به هر حال هر کسی نادیده از رویت گواهی میدهد می دهد پرده بردار ای که خلقی در گمان نفکنده همین یا یارب به چه شاید گفت این نکته که در عالم رخصاره به کس ننمود آن شاهد هر جایی شاهدی که همه جا هست ولی به هیچ کس رخصارش نشون نبید ساغی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست این اشاره به این است که انسان اشرف مخلوقات و حقیقت هم این است که اگر قریح ای نبود و اگر ذوق نبود و اگر چشم زیبا نبود این همه زیبایی این همه زار شده کرد. <تصح> از خودشون در میمدم از خودشون میپوزیدند از خودشون بدل میرفتن بدون اینکه کسی ازشون لذت میداد. این اشاره به این معنی میگه ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست شمشاد خرامان کن. شمشاد مراد قامت قامت مست شمشاد خرامان کن تا باق بیارایی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی و یاد تو هم مونست در بوشه تنهایی توضیح است که نمیخواد. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی لطفان چه تو اندیشی؟ وخت من تو فارمو فکر خود را خود در عالم رندی نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خودروی ندیم و مطرب و ساقی همه اوست دیال آب در رهبان صد جو حافظ بودش گفته یکیش همین غزل چون غذالی خیلی قشنگیه بیارم ببینم که سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چهانه نهادم عقل را رختوشه از می سه شهر هستیش کردم روانه نگار میفروشم اشبهی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه ز ساغی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه نبندی زن میان ترفی کمروار اگر خود را ببینی در میانه برو این دام بر مرگی دگرنه که انگارا بلند دست ندیم و مطرب و ساغی همه او حیال آبوگل در ره با حامل بده کشتی می، تا خوش برای این از این دریا ناخی در کرامه وجود ما مهممای از تحافظ تحقیقش خسون است و فصل اینه که میگه که فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست در این مذهب خودبینی و خودرائی یعنی وقتی گفتیم من گفت که مولانا یک قصه ای داره که عاشق بیچاره آمد در خونه معشوق در زد معشوق پرسید که کی هستی؟ گفت منم ولی که تو هستی بول که کاره من اینجا نداریم بعد بعد از سالها بردشان در زد گفت کیه؟ گفت تو گفت تو من در نمیست. این مقام فناست. دید. یعنی شخص خودشو در میانه ندید زین دایره مینا مراد آسمان و چرخ سرنوشت و تقییم زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل این مشکل در ساخر مینایی تاز بر میگه در زمین اشاره می‌کنه ظاهراً به بازگشت شاه شجا حافظ شبیه‌هجان شد بوی خوش وسلام شادیت مبارک با ای عاشق شیفت خب، ازل قشنگی بود، بگه مشکل نبود خیلی سادرون اکشنین بید تو شماره شیش که یاربه که شاید گفت این نقطه که در عالم اه. این مسرال اولش خدا مخاطب شه تو بونکفسه این مسرال بعدی نه این یارب نه این یارب یعنی خدایا اینو به کی میشه گفت باز اون طرف هم خداست این خدایا و منزلی تحکیل کلامه در حقیقت نه, نه. جمان بناب اون سر انگشت با جایی که من گوشاهر <تصفح> بله. خب ببین آقای استپان میگن جان وطن معنی دیگه داره در... این شاید تازه باشه شاید تازه باشه ما نمیدونیم در اون روزگار در اون روزگار من خیال می‌کنم که حافظ آدمی بوده که در اون روزگار اگر چنین معنی رو داشته حتما بکار کار بلی لغت ها معنیش تغییر می بفرما سلامی چو بوی خوش آشنایی بر اون مردم دیده روشنایی درودی چو نور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی نمی بینم از همدمون هیچ بر جای دلم خون شد از برسه ساغی کجایی کوی مغان رخ مگردن که اونجا فروشند مفتاح مشکل بشایی می صوفی افکن کجا می که در تاوم از دست زهد ریایی رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده از خود آشنایی عروض جهان گرچه در حد حسنه است زهد میبرد شیوه بیوفایی دل خسته من گرش حمتی هست نخواهد حد ز سنگین دلان مومیایی مرا گر تو بگذاری نفس تامه بسی پادشاهی کنم در گدایی بیا موزمت کیمیای سادت زهن صحبت بد جدایی جدایی مکن حافظ از جور دوران شکایت چه دانی تو ای بند کار خدایی؟ دار غزل قشنگیه غزل معروفی هست خطاب به کسی همه هست گفتم بارها بازم همینجا هم این آن مردم دیده روشنایی به آدمی و این غزل خطاب به ساخته و حرفایی هم که میزنه همه به اوست حالا دوستی بوده هم صحبت و همسنقی بوده نمیدونه میگه سلامی مثل بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی مردم دیده مردم های که دیده اون سوراخی است که وسط کره چشمه و نور از اونجا بباره چشم میشه و میبینه در حقیقت در عربی هم بهش میگن انسان و ال الان انسان و این میشه مردم دیده یا مردم که دیده سلامی چون بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی درودی چون نور دل پارسایان بدان شم که پرسایی پاسام و خیلی کم بوده در شیراز قرن بسیار بدی بوده آدمی و آدم درست حسابی خیلی کم پیدا می اغلب دوکندار بود این است که این خطابش به کسی است که شمع خلوت که پاسایی یعنی آدمی که واقعا از در انسانیت به مقام رسید و بعد شکایت می‌کنه که هیچ کدوم از همدمای ما نیستن معلومه در طوری پیش ساخته این غزله نمی‌بینم از همدمان دم یعنی نفس همدمان یعنی هم نفسان نمی بینم از همدمان هیچ فرجا جا دلم خون شد از قسط ساقی کجای سه کوی مغان روخ مگردم مغان در همه موقع... این موق موقو در فارسی باستان همون از که در های فرنگی مجید و ماجی به معنی سهر و جادو از رو آمده مغ به معنی روحانیه و بعد که زردوشتیگری در ایران بسنیت یا مغ رو به معنی روحانی دین زردوشتیگه ولی خب انجایی که قرار بوده که مسلمین مسلمین معترم فقط عرقشه ها بخورن بدن بخرن و بخور دیگه انداختنشو پروختنشو معامل کردنشو اینا کس شنگ این است که این کارا رو پیروان ادیان دیگه اخیران که عرامنه دست از همه برده بودن یهودیا بودن قبلن و قبل قبل در دوره حافظ ظاهران زردشتی ها بودن که این کار میکردن و در ضمن معنی ارفانی شراب هم هست اینه که میگه که در کوی مغان راستی مستیست، راستیست، درستیست از اونجا رو نگرده اگه جای راستگاری میخوای کوی مگان. تو کوی رو مگردان که آنجا بروچن مفتاح مشکل بشه مفتاح این کلید. اسم آلت اسم آلت بروز مفعال مثل مفتاح یا مفعله یا مفعل هست حالا باقیشو نمیخواد مثال بزنیم برحال مفتاح بر وضع مفعال یعنی آلت گوشودن فتح یعنی گوشودن مفتاح یعنی کلید میگه کلید مشکل گشایی رو در پوی مقان میتوشن مرادش هم میگه چون نقش خمب دور ببینی شراب که با. حافظ بعضی بیتاش بعضی بیتاش, بیتاش دیگر تفسیر میکنه و نقش رمزه دور ببینین شراب تا تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است می افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهتریان تاب یعنی حرارت در تابم یعنی در آتش هنوز تا این آخرات که یه مشتی کارگره آتشکار بودن مثل آهنگر و دوادگر و نسگر و امثال اینا وقت که چیزی رو میذاشتن تو کوره به اون شاگرش رو میگهتن تاب یعنی بدم کوره رو که آتششون رو میگهتن بله اون تاب ها اون تاب به من یه تابیدن میگه من از دست زهد دریایی در تاب هم و میه صورتی افکن برسون به من که از دست این خلاص بشه رفیقان چنان عهد صحبت شکستان پیوگی نبوده است خود آشنایی بسیار پای مسئله اتفاق افتد من امروز یاد یه رفیق پنجاه سال پیش خودم بودم که بعدم اعدام شد مرتضی پیوان و یه خاطراتی ازش این اول دل وزارت راه بود اولی که استفرام شد پرستانش هم به آدم گشادی دستیم بود از یکی قرض کرد شندر گاز حالا پارمند تازه وارد به خدمت دولت شده چقدر اصلا پول داره که یا سر از یکی قرص کرد اون آقام ازش این سفته گرد که در ست قسم رو اینم سر موعب عرضا داد برای یارو گفتش که من سفته تو رو گم کردم و باقی که نمیشه گم کردم گفت به ناموس مادرم این سفته تو رو گم کرد چل ساری پیش رو میگفت میگفتم خیلی میگه اما بعد دیدم دادگاه من احضار کرد چرا طلبیشون نمیشه رفتم تو دادگاه دیدم تفتار باشد رو نمیشه باتن آقا این آقا گفته که به ناموس مادرم هم من رو گم کردم ولی حالا که ناموس مادرش تا بیشتر همیشترین ارزش ما میدید اینجور آدم که دوستی یه آدمی رو به عنوزه تا تون ارزش قائل نباشن در تمام عدوار وجود داشته رفیقان چنان عهد صحبت چکستند که گویی نبوده است خود آشنایی هر جهان گرچه در حد حسنه است یکی از معانی حد لبه کارد تیزی کارد یکی هم حد به معنی حد اکثر منترجه این سرعت 13 کیلومتر درثانی رو سرعت سر رو بهش سرعت حد یعنی سرعت که بالاتر از اون دیگه سرعتی در جهان نیست اونم باز به معنیه در حقیقت میگه داشتن کسی در مرز خود که دیده از این غلطانه عروض جهان گرچه در حد حسن است با اینکه زیباییش در آخرین دریجه است زهد میبرد چیوه بی بخورد اما بیوفاییش از،, از حد هم گذشته عروس جهان گرچه در حد دوست نست میبرد شیده بیوفایی دل خسته من گرش همتی هست نخواهد سنگین دلان مومیایی خسته به منی هنوزم الان در افغانستان اینجاها به جای خسته ای که ما به کار می بریم میگن مانده شدی یعنی خست شد. خسته اونه این مجروب دل خسته ای من یعنی دل زحم دارم گرهی دل من حمتی داشته باشه مومیایی از سنگین دلان نمیخواد. مومیایی وسیله شکسته بندی و وسیله ترمین شکستگی ها و خستگی ها بوده و گویا از معادن نفت از درس های مهادن طبیعی نفت تراوش میکرده بیرون و اینا رو جمع میکردن و میابردن در مکه اینا هم یه مدتی این مومیایی رو میفروختن و از صوقاتی هایی که مردم از مکه میابردن همین بود خیزای سیاه بود مثل غیر که بعد برای شکستگی و دردای غستخانی اینا یک کنش رو میداختن بروغن و این حل میشد بعد می مالیدن اونجوری که ایاران هم پا اینکه سالم بودن وقتی می خواستن دوندگی های طولانی چند روزه بکنن موم روغن میکشیدن. کشیدن یعنی همین مومیایی و روغن رو به پاهاشو مومالیدن که پاهاشون نرم بشه تا بتونن بدونن به هر حال میگه اگه دل من حمتی داشته باشه هست سنگین دلان مومیایی نمیخواد تو گلستان سعدی هست که گفتش که پارسایی زخم فلنگ داشت و برای این کار یه داروی گفتن موشدارو یه داروی چون زخم فلنگ خود نمیشه گفتن که فلان کس داره و اتفاقا اون شخص به بخل محروف اون صاحب دل گفت من از این آدم موشدارو نمیخوام گفتن چرا؟ گفت اگر بروم دارد یا ندارد و اگر دارد دهد یا ندهد باری دیدار او زهر قاتل است <تصفيق> <تصفيق> اینه که میگه مرا دل خسته من گرش حمتی هست نخواهد سنگین دلان مومیایی مرا اگر تو بگذاری ای نفس تامه نفس تمرکار بسی پادشاهی کنم در گداری اگه تو بسرد بخشنه دیگه بی آموزم کیمیای سعادت احتمالاً ممکن است خاجعافز این کلمه کیمیای سعادت رو از عنوان کتاب حجتال اسلام غزالی گرفته باشه غزالی کتاب مفسری داره در چهار جلد. به نام احیا و علوم دین و استاد استال ما مرهوم از زمان میفرمود که الان ما دانشجو دوری دکتری بودیم می که شما اگر احیاران نخوانده باشید هیچ نخوانده و ما هم رفتیم احیای عربی رو گرفتیم یک بعدها کنیم ها یه ترجمه فارسی هم ازش خوشبختانه چاپ شد ترجمه بود مال قرن هفتم شخصی نام معیده دین خارزمی این کرده بود و مرحوم حسین خدیب اینو چاب کرد و اونی و فرهنگ هم براش منشه. اما خود غزالی هم میگوید که احیام و فصل من برای اهل علم نوشتم ولی خلاصه مطالبشو خودم به فارسی برای مردم عادی نوشتم به قلم خودش به نام کیمیای سعادت این کیمیای سعادت هم, هم استاد احمد آرام چاپ کرده هم یه چاپ بهترش رو مرحوم خدیجم باز کرده و هر حال خیال میکنم که در این حال که اینجا این معنی خودش دقیقاً داره ولی چیزم هست اشاره به اون کتاب از زاجم هست بیا موزمت کیمیای سعادت کیمیای سعادت چیه؟ سه صحبت بعد جدایی جدایی من کنها حافظ از جور دوران شکایت چه دا می کنید بند کار آدم باید در مقام رضا باشه کسی که در مقام رضا باشه هیچ وقت شکایت از هیچ چیزی نمی خب یه دفعه ما با اینکه استراز این بله, بله با اینکه کم فروتیم این, این ده هست و بود آمدیم و اینا وای لطفا آب ضعیف آدمیم شده که این که این که این که این که این که این که این این که این که این که این که این این چاپ این که این که این باید. بچاشم کردم ابروی ماه سیمایی خیال سبز ختی نقش بستم جای زمام دل به کسی دادم من در که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی سرم زداست دست بشو چشم انتظار بسو در آرزوی سر و چشم مجلسارای زهی خیال که منشور بازی من از آن کمونچه ابرو رسد به تغرای مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد بیا ببین که کرامی کند تماشایی می کرامی کند می کند به روز واقعه تابوت ماز سرب کنید که می رویم به داغ بلند بالایی. در آن مقام که خوبان ز غمزه تیر کشند عجب مدار سری افتاده در پای فراغ و وصل چه باشد رضای دوست طلب که حیف باشد از او غیر او تمنای مرا که از رخ او ماه در شبستان است کجا بود به فروغ ستاره پروای دررز شوق برارند ماهیان به نصار اگر سفینه ی حافظ بری به دریای سیما کلمه عربی است به خلاف ظاهرش که بعضی ها فکر کنم فارسیه و اسم اششونم میزنن فارسی، فالسپا میزنن سیما خانم سیما عربی است. و با کلمه اسم از یک ایش و متاسفانه معنی خوبی هم نداره اصلا به معنی داغ کردنه میدونید که حیبونات رو برای اینکه شناستان می‌داشته باشن عصب و خاطر و گاه و اینا رو داغ می‌کنن هم کفلشون هر، مثلا کسی که هزار تا دا داره یه مهر داره، داغ می‌کنه، میزنه اون کسی دیگه که چیز دیگه داره، علامت دیگه می‌زنه این این ریشه وسمه یعنی داغ کردن اسم از همونه، برای اینکه اسمم که رو شخص می‌ذارن مثل اون است که اون حیبون داره که نشان مشخص بودنش در حالی که پارسی ما نام بسیارم قشنگه و جای تحصیفی که در پاکستان همه میگن نام تا ما در ایرون میگیم با من یادم میست که این یه وقت گفتم در پاکستانی نوکری آوردن رو ما این انگلیسی بلد نبود پارسی هم هیچی بلد نبود گروه بود تو خونه ما هر کاری کردیم از این بپرسیم اسمت چیه؟ نشد نفهمم. تا گروه یکی از کارمندای رایزنی آمد خونه از این پرسید اسمت چیه؟ گفت کیان نامه؟ گفت کارم داد. اسمان که نام درست اسم هر حال ماه یعنی ماهرخصات و محسورت. ماه به چشم کردم به چشم کردم یعنی در نظر. ده. به چشم کردم ابرو ماسیمایی خیال سبز، خطی نقش بستم جایی. زمام دل به کسی دادم، من در ویش، که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی میگه من لات درویش یعنی این چیز اینجا زمام دل به کسی دادم که تاج و به چیزی نمیگیره که برسه که من لاته عرض کنم که اینجا یه بیت دیگهم بیت نهم هم میگه که از رخ اون ماه در شبستان است کجا با باید بفرو به ستاره پروایی؟ اینجا پروا و پروا بودن با به آمده اون بالا پروا با از آمده که نیستش به کس از تاج تا تخ این حرف اضافه از و به در بعضی افعال وقتی میان معنیشو به کلی عوض یعنی صد درصد تغییر میده پرداختن به یعنی مشغول شدن به یک تا پرداختن از یعنی تموم شدن آن مشغول بودن یا مشغول شدن به یعنی باز کار رو پیش کرده مشغول شدن از یعنی اون کار تموم باشه اینن اینجا یه زمان دل به کسی دادم من در که نیستش به کس از تاج و تخت پر بود یعنی هیچ تاج و تخت رو به چیزی نمیگیره و من ببین چقدر نظرم بلنده که آمدم وقتی هم که مخواستم معشوق پیدا کنم من گدا کسی رو پیدا کردم که تاج و تخت هم تحساب می سرم زده هست چشم از انتظار بسرود در آرزوی سر و چشم مجلسارای این سر و چشم در آورده دوبار در نهایت زیبایی زهی خیال که منشور عشق بازی من از آن کمانچه ابرو رسد به تقرار منشور فرمان پادشاهی مهر نکرده است. مهر نکردیم چی؟ یعنی اینکه این فرمان صادر شده که برن سر خیابون وایسن با صدای بلند بخونن برای اطلاع همه مردم. این یعنی میگن منشور. حافظ میگه منشور اشبازی من. وقتی وقتی من آشپز شدم دیگه همه خبردار میشن. ستان است که بر هر سر بازار اما می این خیال بااطله که من فکر بکنم که منشوب من چوبش بازی من به توغ برسه توغ یه نوع خطه بعد فرهنگ معیین رو ا می کنید یا هر فرهنگگه رو زیر توغ ها می الان هم در ترکیه خیلی یه خطایی است که منهنی های اینطوری داره سه چهار تا خیلی هم قشنگ و سعی میکنن اسمای مختلف آیات قرآن و امثال اینا رو به این ترتیب بنویسن و این کسان رو میگن تقرا نویس نهرهای دنسگاه های سلطنت هم بیشتر به صورت تقرا بوده و این در اختیار کسی بوده که اون شخص رو بهش گفتن تقرایی تقرایی یعنی کسی که منشورهای پادشاهی رو به تقرا می رسونده مور می و بعد این منشور یعنی این تقرا بالا ساده. اون مور که عرض کردم که مور کرده است اون حالت محرموم داره که بگه فقط مقام صلاحیتدار دار بیتونه باز کنه اون تقرا مثل انجاز یه خیلی خیال پاکتی که من فکر کنم که منشور اش بازی من ابروی معشوق به تغرابش اقدام دیگه علاییه. یه خیلی خیال پاکتی که من فکر کنم که منشور اش بازی من به برسه از ابروی معشوق. یعنی تأثیرت. زهی خیال که منشور اش بازی من از آن کمانچه ابرو رسات به تغراب. مکدر از دل مقدر یعنی تاریک مکدر از دل. آتش به خرق خواهان زد <تصفيق> خیلی حافظ از خرق سزوندن حرف میزنه و معنیش این است که در حیرت ریا و تزویر و بازی رو به این ترتیب از بین اینجا هم الان همینی مکدر است دل. آتش به خرف خواه زد بیا ببین چرا که کرامی کند تماشایی کرا کردن یعنی کرایی کردن هنوزم میگن که کریاش نمی کنه من بیان پلونجا یعنی ارزش نمیگه میگه من قرقم آتش رو هم زد و این قابل دیدن هست قابل تماشا هست بیا کرایی تماشا میکنی. در ذهن به عرض برسونم که تماشا از مشی و مشی به معنی را رفتن و قدم زدن قط مهشی علا تماشا یعنی با هم را رفتن هر را رفتنی به قصد قطع فاصله معینی نیست که آدم را می‌ره برای اینکه منظره ببینه طبیعت تماشا کنه پاشی استانبول دوره جوانی ما قدم می‌زدن جوانا برای اینکه بوی زیبا ببینن و امثال اینا، اینا رو این نوع قدم زدن که مقصود ازش در حقیقت تیکردن کردن راه خاصی برای رسیدن مقصد خاصی نیست این رو بهش میگن تماشا سعدی میگه که روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا در همه شهر دلی نیست که دیگر به روی بعد این تماشا چون بیشتر به منصور دیدن بوده یواش یواش معنی اصلی تماشا که با هم قدم زدنه فراموش شده و معنی دومش که معنی دیدن یه چیزیست به کار رفته در کتاب امیر اصلان تماشا خانه وعنی اینجا میگه خرقهاتی زدن من کریه میکنه که تماشایی بکنی دیدنی به روز باقعه تابوت ماز سر کنید باقعه خیلی معانی داره چند مرگه اینجا معنی مرگه یکی معنی خوابه شبیه به واقعه دیدم علامت عرصات که میزدن به میزان عضو سومسلات در واقع دیدم در خواب دیدم ولی اینجا روز واقعی یعنی این روز مرگ میگه در روز مرگ تابوت ما رو از سرب بسازید نمیدونم اعتمالا خود حافظم قدش بلند ده. اگه قدرش بلند نبود که معشوق و بلند قدر نمیقاستید تابوت ما را از سرد بسازید برای اینکه به داغ بلند بالایی داریم از در آن مقام که خوبانز غمزه تیغ کشند عجب مدار سری او افتاده در خواهی عشق از بسیار کردست کنند تعدیه میگه که گر از پاین در آیم او بهتر از من 100 هزار از دست اینه که یه جایی که خوبان از غمزه تیغ بکشن از اینکه سری افتده بشه ارپایی خیلی تعجب نده فراغ و بصل چه باشد اینجا میره تو وسایل ایرتان فراغ و چه باشد رضای دوست طلب هرچه اون میخواد درست که حیف باشد دازو او غیر از او, او تمنا سعدی داره که میگه گویند تمنایی از دوست بکن سعدی از دوست نخواهم داشت جز دوست تمنا این همون مزمینه سعدی زره به نظر من زیبا در هر حال فراغ و بسی که باشه رضای دوست طلا که حیف باشد از او قید او تمنایی مرا که از روخ او ماه در شبستان است کجا بود به فروغ ستاره پروایی پروای داشتن به یعنی توجه داشت این کجا که اولش میاد استفام انکاریه یعنی پروایی ندارم این یعنی توجهی ندارم شبستان اون استانش پساوند مکان شبستان این جایگاه شب این جایی که آدم شب در اینجا بپاریم بره اینجا در یه اینجا دنیا بشونگی این بدرون مراکه از روخ او ماه در شبستان است کجا به ستاره باید به فروب ستار پر دور در ارزشو برارند خیلی بیت قشنگیست این. بیت آخری حافظ اولا سفینه هم به عنی کشتیه و هم به عنی جنگ کلمه جنگ هندیه ولی سفینه کلمه عربی و فارسی. به عنی مجموعه شعر حافظ داره در این زمانه رفیقی که خالی از خلله است سراهی می ناب و سفینه غزل. است سفینه غذر محوم انجوی هم که منش خوبه درجه یک گم کرده و اسم کتاب شد سفینه غذاب میگه اگر سفینه حافظ به دریای ورسه ماهیا همه مورباریت میارن بر مثال تاریدش درر جمع دره دررزش شو برارن پر آرند یعنی بیارم میارم بالا دور عرضش و برا... چقدر ایمیج قشنگه واقعا من از 20 سالگی عاشق این فکر دور عرضش و پر آرند ماهیان تنسا اگر سفینه ی حافظ من تو ذهنم بود رصد به دریا اینم سیت خانداری هست آرزو کنم چه تو 5 نسخه هست رصد به دریایی از سه و سه و از ده نسخه پنج نسخه رصد به دریایی پنج نسخه هم بری به دریای من رسد به دریایی بیشتر تو زهنم مونده به دریب حفظ قدیمی که دارم ولی به هر حال مطلب مضمون بیت خیلی مزمون قشم بخواه بخواه در همه دیر مقان نیست چون من شیدائی تقه <متصفح> جایی گروه باده و دفتر جایی دل که آینه شاهیست و دارد از خدا میطلبم صحبت روشن راهی کردم توبه به دست سنمی باده فروش که دگر می نخورم بیلخ بزمارای جونها بستم, بستم از دیده بدامن که مگر در کنارم بنشانن بر کنارم این دم از ذهنش میخونم بر کنارم بنشانن صحیبالای کشتی باده بیاور که مرا بیلخ دو گشت هر گوشه چشم از قم دل دریایی سر این نکته مگر شم برارت به زبان ورنه پروانه ندارد به سخن، پروائی نرگه ل... ما... سرلاف زد از شیوه چشم تو، مرنج نروند اهل نظر از پی نابینایی سخن غیر مگو با من معشوق پرست کزوه و جام میم نیز به کس پروایی این حدیشم چه خوش آمد که سرگه میگو بر در میکدهی با و نی ترسایی در مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از خی امرون بود یکی از بزرلایه خیلی خیلی زیبای حافظ اولا بگم که برای اون بیت آخر قصه‌ای هم ساختن که وقت که حافظ ساخته بود که اگر مسلمانی از این است که آفظ دارد آه اگر از پیه فردایی پردایی گفتن که قربان شما منکر معاد و منکر قیامت و رستاخیز شدی و فردا ممکنه قال وسط چاک کنن تکدیرت کنن و عذیرت کنن پر پیش مرشدش که چاک کنم گفت از قول کسی اینو نقل کن برای اینکه نقل کفت نیست بعد حاجه پیت قوی رو ساخت این حدیث هم چه خوش آمد سهرگه می گفت بردر میکدهی با دفعنهی گر مسلمانی است. اما اینا از مقوله هایی است که عواموناست می سازد برای اینکه حافظ مقام بسیار عالی در علوم دینی داشته و شاگرد استادی بوده نام قوام دین عبدالله که لقبش استاد البشر بوده و در مقدمه دیوان حافظ در همون مقدمه محمد گلندام لغبه برای حافظ یاد میکنه که این لغبه رو مستقی نمیدادن به کسی همینجوری که الانم هم بر نمیدارم به نمیدارن دکتر و مهندس رو نمیدارم چی چی رو چی چی رو نمیدارم پروفسور رو اینا رو بلاخره باید داشته باشه یک کسی که بینیمیسن اگر کار حسابی باشه این است که حافظ به طور حد یکی از دانشمندان زمان خودش دانشمندان بزرگ زمان خودش بوده و حتی اقل اقلش این بوده که قرآن رو در چارده روایت از بر می‌خوند که خودش میگه و نمیتونیم بگیم که این دعویست برای اینکه اگه دعوی بود صد نفر آدمی که بد خواهو بودن این گفتن بیا بخون ببینم و قرآن خوبه یه چند کلمه بیان در باب این قرآن در چهار دره باید از کندن بگم برای از ارز کنم که در قدیم ثوات خیلی کم بوده عوضش حافظه ها خیلی قوی بود و نشانه هایی از حافظه ها تو کتاب های ادب هست که ما اگر نمونه های نزدیکش ندیده بودیم فکر کردیم که اینا حتما دارم مبالغه میکنم و می میگنم ولی بوده چیزهای خیلی عجیب و غریب به صورت یه اده زیادی قرآن رو حفظ میکردن ولی یه شرط دیگه داشتن تا حافظ اون اینه که فقط حفظ کردن آن نبوده بعد با صدای خوش هم بخونه کسی که قرآن از از داشته باشه ولی با صدای خوش نخونه لقب حافظ نمیده بنابراین حافظ هم صدای خوش داشته هم قرآن از بر میکنده و میگه در چهار دره واقعی یعنی چی؟ معنیش اینه است که تقریبا یه سی سالی بعد از رسول اکرم هنوز هیچ کتابی به اسم قرآن در میان مسلمین اصلا وجود نداشت چرا؟ بعضی از صحابه برای خودشون یه چیزهای ترتیب داده بودن یه قسمت های از قرآن و خیلی از قرآن یه بشت بودن برای خودشون میگلشن. یکی از اینا هفت دختر عمر بود یکی دیگه مولا علی ابن عبی طالب یکی دیگه عبدالله ابن مسعود بود از صحابه خواست و کسان دیگری که اگر دلتون هم بخواهد واجب این چیزا اطلاعاتی دست بیارین این تاریخ قرآن مال مرحوم محمود رامیار هست اینا همه رو میوشید یا الفهرست ابن ندین خرجو کنید اونجا هست فقط در دوره عثمانه که به دو دلیل تصمیم میگیره قرآن رو به یکی این که در دوره عبو یعنی بلافاصله و از وفاتر از بلاکرم یه عدهی زدن زیر دادن مالیات و حرف حساب و از ها و گفتن که ما اون باج و خراج و اون خونت و رو به محمد میدادیم اون دیگه نیست ما نمیدیم عبوبک گفت نه این تکریف مسلمانی شما مسلمان سوید باید این حقوق بپرده دید خدا نمیدون گفت ما میگیرم و عمر به او گفت اسلام خیلی نوخاست و ممکن است که چشم زخمی اتفاق لفته تو بهتر با نام مدارا کنی و یه جوری وسط کارو می کنید او با این کار می برای اینکه درست اسلام نوفاست اما این اولین است که میخوان از اون چه در دوره پیغنبر مقرر بوده و مردم اجرامی کردن شونه خالی کنید و من اگه این کارو بکنم این سابقه میشه و پس فردا تمام دین از بینید بنابراین لشکری فرستادن به جنگ این جنگ معروف شد به قتال اهل رده قتال یعنی مقاتله یعنی جنگ اهل رده یعنی کسانی که مرتد شد اینا طبعا همه از صحابه پیغمبر بودن و عده زیادیشون از حفظه قرآن و عده بسیار زیادی از اینا کشته شدن و اگر احیانا شجاعت فوقلاده خالد ابن ولید نبود ممکن بود که همهش این ولی به هر حال این, این اهل رده سرکوب میشن و قرار کیا که حافظها بگیرن در نتیجه این کار نیمی از کسانی که, که حافظ قرآن ده بمیرن اده دیگری هم که قرآن رو حفظ داشتن دونه دونه دیگه اینه که عثمان احساس کرد که بعد از دوره عمر، احساس کرد که اگر دیر به جنبه، ممکن است که یک قسمتی از قرآن از بیند گرفت. و تصمیم گرفت که یک قرآن برای همه مسلمین تهیه کنه همونی که الان با همه اختلافاتی که بین شیعه و سنمی و فرقه های مختلف احل سنت هم با هم مخالفن نه، ولی هیچ خدومشون ما ندیدیم که درباره قرآن یک کلمه حرف زده باشه اگر هم کسی باشه گفته باشه نادره یک در صد میلیون که اصلا به حساب ندید برای این کار اول تمام قرآن که صحابه پیغمه رو نوشته بودن اینا رو گرفت که ازشون استفاده کنه طبعا اونیس. بعدم اعلام کرد که هر کسی آیه یا سوده ای از قرآن رو از برداره بیاد بگید ولی باید دو نفر گواهی بدن که ما شاهدیم که این آیه قرآن یا مثلا ایشون وقتی بوده که پیغمبر احکران خوندن و همثال اینجور چیزایی که دو, دو تا شاهدم بشته شد بعد یه ده آمدن یه مقدار آیاتی خوندن و داخل قرآن کرد و گفتم که یه عربی آمد گفتش که من یه آیه به یاد دارم و بگو آیه‌ی پوند تسب کتاب بعد گفت شاهدی داری؟ گفت نه گفت متاسفم من بدون شاهد نمیتونم گفته تو داخل کلام خدا بگو حال این متنی که فعلا می‌بینید بعد تمام اون قرآن‌ها رو همه رو از بین بردن و یک مطر، همین مطر فعلی، چهار مصده نوشتن، یکی در مرکز خلافت موند، یکی رو فرستادن به روم، یکی رو فرستادن به مصر و یکی رو فرستادن به ایران. و اسم این مصحب شد امام، یعنی پیشبا. اما باز خب پارا تازه سه چهار نسخه هستم تازه برن اونجا باز هم نسخه بردارن خب این از زوال نجات میگه قضیه رو اما به جماعت بسیار زیاد مسلمین که وفا نمی که همه این کتاب رو بینن چکنن اینا تو و عده که یه مقداری از قرآن یا همه قرآنو رو از حفظ داشتن اینا گفتن قرآن یعنی کسانی که قرآن رو میخونن قطها هزارها قاری به وجود آمد که در درجه اول 14 تا در درجه دوم 10 و در درجه سوم یعنی آخرین و معروف‌ترینشون هفت بودن تو ایشون گفتن قراء سبع عاصم و ابن کسی و نمی‌دونم امصلی ابن مسعود بعد هر کدوم از این تفتا قاری اون قررای دیگر رو به شما قررای شاز یعنی قاریان که قولشون نادره و خلاف قایده است و معمول و مرسوم نیست هر کدوم از این قررای هفت هم دو ترابی داشته که باز یکی از اینا میگفت مثلا آسن این آیا را اینجوری خونده اون یکی میگفت نه آسم اینو اینجوری خوند حافظ قرآن رو نه تنها حفظ داشتی تمام این اختلاف روایت ها رو از بردشته. یعنی میگفته که کدوم قاری به روایت کدوم از راویاش اینو رو چجور کن عشق به فریاد ور خود به حافظ قرآن زبر بر در چار دره. دایی چیز میکنه اون غزل بیا با ما مورزین کی داری که حقی صحبت دیرینه داری میگه ندیدم خوشتر از شهر تو حافظ به قرآنی که اندرسینه ده یه که آدمی عقلش نمیرسیده که اگه بگه آه هست اگر از فهی امروز فردایی میگیرن چوب تو آسینش میکنن آدمی که تو اون محیط و تو اون روزگار هم بوده بود رند آلمسوزم بوده و تو همه سراخی سر کشیده و همه چی رو دیده که وقت مجبور بشه بره, بره پیش پیرش پیش شیخش بگه من چکار که همه ای داده بیداد با اون بگه که بله یه بیتی بگه این از غور به نظر افثانه و در هر حال خب برا قسط گفتن بعد نیست اما فکر میکنم که صحتش کلنده هم این اینو من این ما نه، جواب میدم، اما آقا الان معطرح نیست بعد بگین میگم، یه روزی گفتن که پیغمبر اکرام در خانه کعبه دوتا آیه گفتن تکل قراری قول اولا و ام نشفااعت ها نلت تجا و بعد گفتن که این آیه ها رو شیطان در دهن من به آی می و این نقل شده که کتاب تفسیرم هست آقای سلمانرشدی چیز خیلی تازه کشف نکردیم کتاب هست اون تا عامه مردم همشون بسیاری از مردم اونطور نمیدونه آی ها ننسخ شده عوض شده آمده بد برداشتشی شده خودت میشه عوض شده تغییر کرده تا که خود پیغمبر بوده این قبی تغییرات اتفاق نفته این چیز مهمی نیست در همه دیر مغان نیست شمان شیدایی خرقه جایی گرور باده و دفتر جایی من همینجوری بدون اینکه که یک دلیلی برای اثبات این عقیده داشته باشن فکر میکنم که دفتر کنایه از قرآن دلیلش هم اینه که سابقه ای بریم در این مورد یه شخصیست به آن سلم خاصر خاصر یعنی زیانکار این سلم خاسر شاعر بود که قرآن داشت دلش شعب میخواه قرآن رو برداشت بود میشه میفروش گروه گذاشت و <تصفيق> بود به این دلیل محروب شد سلم خاسر و بعد این دفتر گروه گذاشتن از اونجا مضمون شد تو شعرهای مختلف است که خیال میکنه شاید اما اگه قلیل محکمی از من بخواید من ندارم میگه در همه دیر مقان دیر که میدونید جایگاه چیزای مسیحی هاست راهقای ها. دیر مقان یعنی محل زرداشتی ها در حقیقت یا همون مسیحیاتون در ظلم مسلمین یکی از خصوصیتی هم که دارن این است که هیچ اعتناعی و عدیان دیگه نداشتن که این کدوم اون کدومه یعنی مثلا یهوگی و مسیحی و زر پشتی فرق اصلا نمیکردی بل. بلی اونجا شاید نه برای که اون دفتر بیمهنی دیگه نیست برای اینکه دفتر خیلی جه هست. به خواهد دفتر اشعار راه سهرادی همه جا نمیشه این حدیب کرد من اینجور به نظرم آمده که این دفتری که گروه می بذارن ولی در همه دیره اینا سعدی مثلا آدمی آها سعدی کم آدمی نبوده که این نمی که کیشیش ملای یهودیاست یا زردشتی یا مسیحیه یا عوستا کتاب ارمنی یا کتاب یهودی یا کتاب زردشتی اینا بلط یا برحمن مثلا که میگه هند رفتم و یه قصه خیلی آرتیستی پلیسی هم داره بوتی دیدم از آج در سومنات آتمر از و در جاهلیت من ها تو دو داستان ها اونجا باید نمیدونه برحمن مثلا کدوم ایناست اینا رو هیچ این ای نه این جهت بوده که انقدر بیشور باشن برای این بوده که فکر میکردن که اینای که همه گمراه و بدبختن و هیزوم جهنم هن. بنابراین چه فر می‌کنه که این یهودی و شی و مسیحی رو چه حچو خادشو باشه اینه که اگه خاجه میگه دیر موغان که دیر اصطلاح مسیحی و موغان اصطلاح زردشتیه خیلی تعجب نفر در همه دیر موغان نیست شما شیدایی شیدا در حقیقت می دیوانه ولی خب یعنی شیرین عقل در حقیقت که هنوز بل <تصفح> به مراحل عالی جنون نرسه در همه دیر موقان نیست چون شیدایی شیده هایی خرقه خرقم چیز بوده برای درویش برای اینکه که در حقیقت سند وابستگی او یک سلسله به یه گروه اخلاقی خرقه شده یه خرقه رو یه تکی رو گشتم دفترم یه فزیده بگشت موسیقی ممکنه و هر حال برای دیگه این را هر میشه معنی کرد و میگم منم حدس میزنم شایدم نباشه اینطوره بله ولی اینجا صحبت گروه گذاشتنشه یه جای دیگه هم میکه که صحبت آتیش زدنش میگه سراحی میکشم تنهان و مردم دفتر انگارن عجب گر آتش این زرد در دفتر نمیگر این دفتر حالا اگه قرآن هم نباشه کتاب ده هست دل که آینه شاهیست قواری دارد دل رو شریفترین عوض به بشر می دونستن من چند بار اینجا حرف زدن راجب اون سوویدا حبت و نقطه سیاه در اون قلب که معتقد بودن که همه رموز خلافت خداوندی در اون نقطه سیاه دل آدمی است نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آن چه در سر یه بنی آدم از اون. این دلیل میگه دل آینه شاهیه دل محل تجلیه ذات حقه میگه این دل آینه شدوش قبار میشه. این قبار چجور پاک میشه؟ صحبت و دوستی روشن آدم روشن رای میتونه این قبار رو پاک کنه از خدا میتلبم صحبت روشن رای کردم توبه به دست سنمی باده فروش که دگر می نخورم بی روخ بزمارا بزمارا باشه ورد بخور جویه ها بسته هم از دیده به دامن این دیگه جوزه مبالغه های شاعران هست جویه ها از دیده به دامن که مگر در کنارم بنشانند صحیبالای این جویه ها رو بستم که بلند قامتی رو در کنار من بنشم کشتی باده بیاد بر که مرا را بیروفه دوست گشته هر گوشه چشم از قم دل دریای اون دریا رو با کشتی باده تیب بود سر این نوته مگر شم برارد به زبان سر عشق ورنه پروانه ندارد به سخن پروانی این هر البته که بشر خودش میسازی پروانه میاد خود چونزنه و آتش و میسوزه و هیچی نمیگه بنابراین مگر شم این بعد به زبان آوردن شم برای این چندبار که چند بار گفتم شعله شم هم شبیه زبانه و هم زبانه و زبانیه در عربی معنی شعله است. اینه که میگه شم به زبان بیاره سرش همان هم سوختن یه چیزی بود سر این تم مگر شم برارت به زبان برنه پروانه ندارد به سوختن به سوختن پرواهی نرگس هر لاف زد از شیوه چشم تو مرن ببینید این اهل نظر رو چقدر قشنگه اهل نظر معنی خیلی پیش پا یعنی کسانی که چششون می‌بینه کور نیست معنی اصلیش اهل نظر یعنی اهل بسیرت و فهم و شعور میگه اگه نرگست لابزد از شیوه چشم تو چشم تو بیناست نرگس نابیناست اهل نظر که دنبال نابینا نمیره نرگس با این اهل نظر چقدر قشنگ سری جای خودش نشستی نرگس هر لابزد از شیوه چشم تو مرم نرغند اهل نظر از په نابینایی سخن غیر مگو من محشوق تره است که وی و به یعنی محشوق که از وی و, یعنی و جامعه نیست به کس پروایی یعنی من هیچ دیگر رو کاری باشستن ندارم محشوق است تو جامعه ای فقط این حدیث هم چه خوش آمد که سرگه می میگفت میگفت یعنی میخوند گفتم گفتن و این آواز خوندن خیلی آمدید که همین دارد با دا دفونهی که حرف نمیزنم که آواز میکنم این حدیثم چه خوش آمد که سرگه میگفت بردر میکدهی با دفونهی ترسایی گر مسلمانی از این از که حافظ دارد آه اگر از قیه امروز دورد فردارد حدیث اینجا یعنی گفته بود. و لا با حدیث یه وقت در جلسه وقت به خاطر هم دیارید و توزیاد پسی حدیث